اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صل الله علی سید رسول الله و آزه الطیبین و رسول الله اللهم رحمه رحمتی و رحمه رحمه درستی که شد راجبه به تحبیر مردم شیخ زنی که خاصل میشه از ظهورات کلام یا همون اصالات و ظهور ارض کردیم که مرحوم در بحث زن اصل ازوری و قرمه عمل زن قرار دودن و این که زن حجت نیست در تنج زن رو بالخصوص خصوص خوبی کن خارج کردن در زن پنج ملحظ البته در خود کتاب و شیخ این چیه روشن روشن پسی بندی نشد اولیچ زبادر کلام جز زنون منطورت زنونی که از قرمت عمله بزن خارج شد ما این مباحث به که و عرض شد که بعد از شیخ مطرح شده در کتاب اصولین بزرگوار انسان مرینه و حضرت استاد و دیگران این مبحث آمده و در خلال بحثهاشون گاهی بعدی از نکات با هم اختلاف دارن که باقید متعرضه و کم و زیاد و خود شکلیت دیگه میخوایم ما خلاصه احسو به این صورت برمی کردیم که اصلا یک خفای بردار است چند تا تفصیل رو نقل کردن خودشون حجیت زباده رو مطلقا کار شدن یه تفصیلی که حسبتن رو بیشتر کار کرده از محبه و قومی بین مقصود به افهان و این مقصود به افهان <تصفح> توضیحات تا هست مقدار متعارف گذاشت از, از این اونی که در کلمات محبه و قومی میشه یک بحث تقریبا اجمالی است و اونی که ممکن از پروانی بین متکنم و مقصود به افهان باشه که در حق دیگران نباشه اون کلا ممکن از قراهین وقتی پدر با پسر صحبت میکنن، کنه بین به باشه وقتی ما محصوم قرصیم با زراره صحبت کردن ممکن از قراهین در کلامشون باشه تو اون قراهین به دست ما نرسیده پس اون کلام برای زراره که محصوده در افهام حجت برای ما با جیهدشون شد میشه این خلاصه و برای ترید کلامیشون ارز کردیم، سه این خواهیاتی که ما داریم خیلی دلیده به این تعلیم به این گونه، به این صورت اجمالی مستقیما از امام صادر شده باشه مثلا به از دیروزه این مثال هسته زهره امام باقر نهام بکنه که فرمون لاقعات و صلاة الگام خبز حدیث لاقعات خیلی بلید به نظر که من زهره خدمت امام برسه به تعام و ما کنه لاقعات و صلاة الگام در قبولا صحبتی بحثی عادتا اینطوره خیلی بعید به ذهن میرسه که این کلام بین امام و زراده بدون موقع بدون صحبتی بدون سوالی جوابی یک بحثی باید شده باشه ما میتونم به فرمان آنگاه سعاد استاد الله میخمز خیلی به ذهن انسان برکیه است ظاهرا کلام محقق قومی ناظر اینه ظاهرا رضوان الله تعالی علیه حالا من مثال بزن روشون ندارم مثال انتظاری که اوشم باشیم و ایشون معتقدم که اگر کلانت و بیر تحلیفات محلقی باشه برده این حجته من مثال بارزش رو دیروز و پیروز ارز کردم مثلا مالک ابن عناس امام مالکی ها کتابی الموتر داره یا خود شافعی کتابی هر اون داره خب طبعا این کتاب که میوسم برای کل رو ناظره میدن این طاروز و دیامت مرکت که به لغت عربی و اصطلاحات فن خودش بایش این که تا اما این روایات میگه این قدیل هم نیست و یکی از جوابهایی این که از اصلاب نمان کردیم این که نه هدف اصلی روایات این بوده یعنی هدف اصلی اصلاب این بوده این, این بوده که کلماتی رو بزاره بودم به عنوان فطر شیعه رو به عنوان منباقص و یا میشه اینجور بگیم که مجموعه کلمان بر هر هم قبول رو کنیم کلام امام صادر عنوان تعلیف نبوده اما بعضها این کلام به کوفه آمده امام فرسون زرانه به جمیل یا به حریف این مطلب رو پرمیده حریف هم در کتاب و صلاح خودش نوشته حالا فرسون همونش در تعلیفات نبوده اما فرسون بعد در دو ساعت تعلیفات آمده و اینکه که استاد می فرمند اصحاب ما هم ورع داشتن هم وساقت داشتن یعنی در مرحله تدوین اون خصوصیات و نکاس و ذراعه و ذراعه می مراهد کردن آقای در اول از خبیلی کتاب اعلم شاضعی نبود اما بعد به صورت کتاب در آمد به عنوان کتاب اصلاح حریف یکی از یعنی آقای به کلمات عدم می شده کنی و که من به صورت واضح تری برم و من موزتر و تا روشن بشه که مراجع. این خلاصه بحثی که مردم محقق قومی هست دیگران که بیشان اعتراض آد ما از کلیم قبل از این که یعنی به خصوص این مدنا چون مقدار که قرام بود و مفتوی شده به نظر ما خیلی کارساز نیست یعنی به نظر به خیلی مشکل درسته باید بست کمروی کرد و از بالاتای رو کرد دست بالای رو مدرد دیروز متعرض شدیم از کردیم اولا شاید نظر محبون شیخ از خود شیخ من روشتن اگر تعملی در کلمات آمه در اینجا میشد اونها بیش از اندازه بیشت این ظهورات تمسل کرده. بیش اندازه در اصطلاحاتشون به عنوان یک اصالت الحقیقه و تحبوده به اصالت الحقیقه و مراعات زراحق خیلی از حد قرشی به نظر ما خالد شدن همین چنده بیش مثال هست زیاده اگر آیان حال داشت باشن مواحثی مثل اقرار و مواحثی مثل کتاب طلاق بیش عقل سندن به مواحثی اصولشون ببینن خیلی زیاده مثلا این گفت لبو علیه کذا درحمون لبو علیه کذا درحمون لبا علیه کذا دیره همه به جرگ خود این رو عمرزن کرده کذا دیره همه اونگو که میگه دیره شما نداری کمیز هده که مرکوب باشه اگر بده باشه اما این گفت کذا دیره همه اهل احد عشر است اما اگر کذا دیره همه این گفت اغذش نه است یعنی من تو دیره همه بعدش مجرور است خب بلا اشکال این اغرفی نیست این در خود ما علاقیه یک کلام علاقی مجمن می برنید. عرض شد من این سوضیحات رو عرض کردن یه بار ما در مواجه زهورات تحصیل مثلا داریم که یک نفسی داریم و این نفس هم ما به هر نحیه هست و این خود کنه جربیه ما امتظام شرعی شدیم این در مقام استقبال ما مؤتربیم در ماهو زهورات یک مسئله در خصوص در اختلاف است هر نحوی شده باید کلام و معنا کنیم اختلاف رو برقرار کنیم دقت هر نحوی شده تزوادیه همه هم و دیگه همه هم هر نحوی شده جمع رو جور بکنید برای چیزی که اختلاف رو برقرار کنیم اینا به زهورات ما بلده دقت این که ما می‌خوایم اختلاف رو حل بکنیم رفتی به ظهورات نداره این که بگیم در عربی و کجا منصوبه کجا مرضوعه کجا مجروره پس با اون کزای کنایه اون عذر باشه این رفتی به ظهورات نداره یعنی این بس اشتباهی که در اینجا مطرح شده یک تو مقابه استنبال ببین برحال دلیل آمده ولی اون موجی مده ما باید یک جوری درستش بکنیم لذا به حساب حقیقه که مثلا این لفت دقیقا در این معنا ورش شده یا به حساب تعدام قرینه سعی کردن یک معنای خاصی رو از لفت در بیارن مثلا روایت داریم شما من حیف دارم بخواد مثال هم دارم؟ من شره بس هم نسته از این رو بللان و بلسلات و عربعی میروم خب ظاهرش اینه که مثلا بلانسود بلو عجال بموند شبه هم از نظر معنوی در قبول تاها ت اما پس ابن مند میگه نه ما به اساس حقیقت هم از صور نمازه چل روزش باید این طور بکرد لمی اقبل الله و صلاة این عدم و قبول تو فساد پساد گرفتیم یعنی اگر این کار را انجام کتا باید چل روز نمازه قطع بکنه این لم اقبل و هر کرده یعنی وجود یه دری آمده ما مجبوریم به همون حدود ظاهری لفظ بدون اینکه این که مثلا کم وزیادی یه مثال معروف است و اقوال ها و اقوال که نموشدن و سوریا رو کی که از این جنازه شدون که این جنازه شدون اسماعی رفت دارند چون از رفت ساده روی کفن اسماعی اونا بود همه کفنه ها شدون اسماعی رفت دارند چون تو تحبیر همین بود همین تحبیر میدید این, این یه دحسی به این نداره اون مقداری که در فیلم آمدن و در, در اصول بحث حالات الحقیقه تمثل کردن این رفتی به زهورات نداره در حقیقت خوب بود مرموشه که این مطلب رو واضح تر از این راه میوردن و عرض کردیم در بحث گذاشه که آقایان در مقام اثبات حسات الحقیقه بی این معنا حتی تمثل کلام مولانا نصف به عرض کرد که اگر مولاقه هم گفت اون مجبور همونه که ظاهر کلامه انجام بده. دفت می این اینو هم ما توضیحاتش هست یکی مسئله استنبال در دلیل مجمن یکی مسئله حضاقه و یکی هم زیر اینها که مسئله احتجاج بر هم روشه ما یه در کلال برسته دادش روشنگ که هیچ شروع نه یاد و از شد که من فکر میکنم که فکر خودم هم که مرموم شیط را به طبعی دیشان استاد دنبال ایشید دیگه هسته اون که اساس و ظروف بوده که اصل اقلالی به اساس و لحقیقه کار نداره. باید برای کلام این عباده ظهور بشه ما کاری به اساس و و اساس و لحقیقه به و کاری هم داره و مثل عبد و مولاد نداریم داریم کاری هم به مشکلات نداریم حيات جناب محمد گوردیاں جناب ہمم به شما صحب واضح صحبت کن این کلام مجمله شما منشی باذگی چی مرجو میگی این کلام مجمله ما با کلام مجمل الزام نمیشه شرط مقابله به شما چند هم پول بده این کلام مجمله کذا جزء الفاظ مجمل در وقت عربی است ما با الفاظ مجمل گفتن حرکتی نمی کنیم این رو واضح بلاشن خودت رو که مرا اقرار چه مقداره دقیقا. اینا خیال کردن از اون راه ها میتونن ظهور به کلام بدن روشن شد ما اعتقاد داریم اون راه ها اصلا کارایی نداره. نمیتونه ظهور بده اگر مولا کلام موجیمهی رو برای عرض برد ما یه ای نداریم که عرض وزیفه یه عبودیتش اختزار میکنه حتما اون رو هر جرحت انجام بده برای با تیجماله که بیروزی رو من توضیح به بذارم بعد ما موازنه می بگیم مولا می بگیم چونکه مولای هرگی که می بگیم لا یو سلام اما نفلو هم یو سلام این محل رو بگیم بیش شاید این محل رو باید بیان روشن و واضح نه نا می خواهی آقای هرکی نوهایی باید بیان روشن بگیم فرق قصه چیه ما این مواردی در کتب و اصول ما آمده بیم یک مناسبتی برای اثبات ساتن عیقه این رو ار و نداره و کن چین چیزی در میاقی نیست بلکه این نقطه اول ما بود اون چی که اساس داره ظهور خود کلام و در درجه بعدی اگر کلام ظهور نداشت ما خوشه اجمال کلام این که ما با کلام مجمن چه کار کنیم اصلا عملی جایی میشه نمیشه چه اصلا اون بخش دیگه زبطی دو ظهورات نداره در درستگاه قضایی اگر کلام مجمنی گفت ما روی به طور اجمالی بحث نمی‌کنیم. اون یک کلام اجمالی گفت، ها با هم درمیفتن که مرادش چیه؟ از خود اون طرف سوال باید سوال می‌کرد که مرادش چیه؟ نه مراد یعنی از اون رو کلام ظاهر میاد. منظور منظور این لفظ مجمله یک کلام واضحه بیان. خب دیگه میفهمه. الان من توضیح میدم یه چیزایی خارج از محدود لحظیه مثل که اون داره جدی صحبت می این روزه مردول نیست یه اصطلاحی که در بینا محدود مردول سیالیش اونو رو بزنیم توضیحش در سر خودش در جوی خودش عرضه. این یک مطلب پس ما در باب ظهورات دنبال اصالات رو نیستیم از شد دیوز. نقطه فرمی اساس زور ظهور رو هم دیروز عرض کرده یک ما در هر کلامی وقتی میگه آبیار دو چیز رو مزهر میکنی یکی ظهور این کلام در فهم اروفی خود ما دوم این که این مراد متکلمه مراد متکلمه این معنایی که من فرمیده اینی که مرموم شیست در اینجا در اول آورده بعد در مرمون استاد سیلاکی واضح صحبت نگردن مبحث زباده رو در بحث زن آورده این نظر به کلام از دیدگاه دومه یعنی به اعوادن اخرای یک کلام رو از دو دید نگاه می‌کنیم. یکی مضلول کلام یکی کشف از مراد متکلم طریقیت و مراد متکلمه این که ظهورات رو در مبحث زنون امور از دید دومه. چون این میگه کاشف ظنی از مراد متکلمه. کاشف ظنی از مراد هم. ما از در باب ظهورات اون چیزی که ما الان در بهسا دید و عقلا میفهمیم این است که ببینن خود کلام چی دلالت میکنه. ها اون بحث اراده مغلول ثانویه یک شیز دیگری. اون یک حالا اونم باید بر بکنیم که اون هرچه شیه. حالا از من اینجا همچین توضیح ها و در ما الان شیعه مطرح شد و اون مظلوم سیاهی کلامه یا مظلوم خالی. چون مظلوم دال میخواد اینجا دال و مظلوم یکیه یه یعنی نم مجازی نم تمسامهای در تغییر. اگر من تغییر مظلوم سیاهی فکر کردم و بدست میکنم که محسن بد توضیح داده میشود. کار فرموندن در حال من مقدم اولا مغلول لحظی خیلی از مغلول سیاهیه در مغلول لحظی دال داره. اونجا نیست دال و مغلول یکیه او من اونجا دال و مغلول یکیه نه اینکه یک دالی داره اون یک فهمه یعنی یک سیره و بغلایی برگی شده این دیگه دالی دی نداره که اگر کسی صحبت کرد این در مقام تفهیم و تفهیمه من هم که می دینم کلامش در مقام تفهیم و تفهیمه دکت رو کنید متکلم تفهیم می کنه و تفهیم کلام مخاطب مخاطب کلام متکلم می فهمه و تفهیم می کنه این اصل حقیقت به اسطلاح اون علت غایی ورده بوده لغت بوده دکت کرده این همراه کلام هست این تفریم و تفهم همراه کلام هست این مزیول لحظی نیست این جل درش نشده این قراردادی نیست دکت میتونه این قراردادی نیست اگر ما دیدیم یک متکلم بگو با آب بیار بعد معلومی که مراده ده. آب شیره و اینا هم نخرد از شیرینیه ما با این متکلم دلست وقتا دیگه نمید کنیم دست نگه میشونم این تو تفریم و تفهم درست الفا دقیقا نیکیشه ما نمیدیم این لفظ تعبدن بودن کاشف زنی از مرادش آقای من دویم آقایی چرا اگر دیدیم متکلم هم درست نگفت بگیم این کاشف زنی از مرادش ما این قبول نداریم این اختلاف ما باهایم ما اگر دیدیم متکلم درست تفریم و تفهم نگفت نکرد دست نگه میداریم نه به از ساخل حیر خلط بکنه کدید این آها متعارف صحبت نمی کنه آب میگه مراد شیره نان میگه مراد شیرینیه این حد شیرین چیز دیگه مرادشه دو بار کردید کلام غیر متعارف شدید میسرمون اون از حیقت ورس تکلیم و خارجه میشه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خارجه تا کلام ظهور پیدا نکنه ببینیم ها اون دلالت لفظی نیست بودی همی هم اون رفتی به کاب و آب بیاد این مثل این که شما از صدای درک باز میشه لفظ آب در باز شد به فرص این بار بسال استقاق در شما شیدین آب افتداعا به ذهن ماده خاص خطور میکنه اما تا می صدای درک دیگه بگیم بگی دلالت نداره چون پشتش اراغلی چون پشتش آغاری نیم چون پشتش به اصطلاح انسان شاعر شاعر یعنی مشعبی هرگاه حرد وجود نداره این دیگه اون خطور رو نمیگاره پس این یک بحث دیگری این ربطی دیگرات وردی نداره ما اصطلاحای اصطلاح هم اصطلاح دقیق نیستیم، نیست این مزدول سیاهی مردل سیاهی خوب دمت بکنیم چون ورد نشده چون حد ما اگر نداره مثل دلالت فعل میبونه ما در اصول به علمه های اصول سنتا و شیعتا اینجور مرده اگر یک سنت رسول الله به قول باشه به اطلاق شمسط میکنیم اما اگر به فعل باشه تمسط نمیب چون یک یعنی فعل اجمال داره حد و حدود نداره قول اطلاق داره قول عموم داره به اطلاق فیل تمسخ نمیشه که اصول مزیدون سیادی از لبیل فیل مزیدون لحسی لفظ وضع داره، حدود داره هر بنابراین صحبت سرینه ما در خطابات و عرفی خودمون دنبال ظهور کلامی یا دنبال مراد متکلمی در کجا در صحه اما اما ام ا�م بزند اگر شد همون هم که نه همونی که گذاشت اینم گذاشت به اراده کاری نداره ارازه مرحله مردول سیاهی صبح دخل رو کنی. نقطه فرقه بین این تا بحث اینجاست که آیا و لذا نتیجهش که دیروز سوزید دادن فکر میکنم تا یک مقداری واضح و لذا حجییت ظهور به اصحالاتون حقیقه برن نمیگرده خودش یک اصل مستقلی باید کلام دارای شرائطی باشه که به حسب اون لغت اون معنا موضوع داشته باشه در ارخ اجتماعی در ارخ اغلائی کسی متفهم به اون واقع میشه اما مراد متکلمه بیشه اون یک مبدول سیاقی نه ملاد پیش اون نیم نه احسن این الان به اصطلاح آلم و اصولی هم این از قبیل درداری یوز نیست. هدف ای این اینا اشکالش که شما مقدر که به تحبیل دیگه برمونی ملاد چون میگن هدف به علت غایی وز تقسیم و تفهم بود پس ما باید دوبار مراقب داریم شما رو شنیدم. این علت مثل شرطه خودش لحاظ نمیشه در این زمینه بشر جرد کرد نه این که فقط تقسیم و پیش توش باشه نه این برد میکنیم یعنی ملاک جرد این اقاض زهور برای کلامه بله قررز اساسی این بود که تفتیم و تفهم بشه اون قررز و دایی اون دیگه جزء موضوع اون لحنی اشتباه نشه شما یک صندلی داره سوی کنید برای پن نفر خب خالنقای صندلی بزرگی داره سوی بزرگی صندلی برای یک نفر خالنقایی سوی کنید کنید طبیعتا این چون علت غایی اون تأثیر بزرگر عمل شماست اما علت غایی موضوع نیست. اون اگه این صندلی بزرگ نکرد بزرگ برای شما درست کرد این موضوع نی یعنی به عبارت اخراق اون تخظیم و تفهم بعد از ظهور کلام اون هدف اساسی این بود چون هدف اساسی تخظیم و تفهم بود هم از استداد تکسیرین گرفت هی کنترل الفاظی رو وارد بکنه که به مراد او یعنی به اون مذهبی که میخواد به اون تخظیم و تفهم واضح‌تر باشه و زاییشمون گفته که ما یه علفاژ عمده لیسه چی، چیزی، چییی، هی بعد خاص میشه، هیوانی، هی بعد خاص میشه، خاصی میشه. مثلا انسانی، این یه کار داره که چرا؟ چون میخواد تو تکیم و تفخون، این انسان با اون حیوانی که مثلاً شاعر تعریف میذاره به نیی این یه کار داره، یه داره که تاین می‌کنه. سر تکیم و تفخون سر لغت هست قبوله. اصلاً از لغت تکیم و صحبت سریعی اینه که بعد از این که بشر وزع کرد و قراردادی قرارداد تو دقیق کنید وقتی بشر این وزع رو کرد این رابطه بین لفظ و ایجاد کرد اون رابطه منعقض شده این نقطه فنی اینه این رابطه که منعقض شده نقطه اینه همیشه اون ذرافت نقطه باید در نظر باشه بر اساس پرتی متفقه ولیزا میار اون ظابطه بر حساس انعقاد زهور و قرالاتی اون ظابطش اینه اما این که عملا چی کرده این خالی نفاهی به عنوان یک مدلول سیاهی هست چون این خواهیت نهایی بوده خواهیت نهایی از لغت تقسیم متفهم بوده و وقت این تقسیم متفهم اینجوری شده اگر طرف متعارده همونی که کلام ظهور داره به اون نسبت داده میشه ما دنبال ظهور کلامیم مگر احساس که طرف متعارف نیست انفاظ میگه چیزی دیگه اراده میکنه. ما اصلا برای کلام او با اصلا اون انقاض ظهور نمی کنیم به اسواحات را حقیقا تم اون کنبال رو فرمانیم نه برای کلام اون انعباد ظهور میبینیم مثلا بدیم درست اینها ها جا زیاد به کار برزن حالا که گ آن رو به معنی حیلی شده معلوم نیست اساس لحظه تعبولی اینجا بجابی نمیشه وقتی یک پردی از مسارت کار شد اونجا پس نکته رو دقت بکنی من به ذهنم میاد. اگر این مقدمات درست بشه در حقیقت من احتمال چون زمان مرحوم محقق قومی بس از این زاویه مطرح نبوده احتمال میدم کسانه که مثل مرحوم محقق قومی. اون ظرافت بحث دقت. قائل هستند که حجیث کلام برای به اصطلاح مقصوده به اینها در حقیقت خود استاد بهشون اشکال میکنه. اینا باید دنبال که مثل استاد باشن. خود دفت رو کن. مرحوم اصطاد بخاهم لمرحوم از فیعه علمای ما مرحوم به اصطلاح تشهر رسول نامندی و اصطلاح مرحوم آشوام از اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح دلی هستن که حصولاً رابطه بین لغز و معنا ها قادم نیستن خوب من در اول درست تو نزید از آن تشمه کردن روابط بین لغز و معنی مثل رابطه بین این چیزی به این دستار برم این رابطه ای که از یک لرزی معنی به انسان خطور می کنه ما ادهی از روابط رو کردیم تقسیم که کردیم یک اصلا رابطه نیست که این مسلکی تأخوزه مثل همه اصلا دو رابطه هست جایی که رابطه هست یا تکمیلیست به نحوه علت تامه یا تکمیلیست به نحوه محتضی یا تکمیلیست به نحوه غریزه یا تکمیلیست به نحوه به اصطلاح همخانی ذهنی یعنی یک نوع تکمیل فقط در ذهن وجود داره نه در واقع نه در قراره این چهار نوع رابطه یا چهای نوع رابطه ثقیلی که سودیات زیادیم جاش می‌جایی سلام جاش لربل و غسله توضیح این رابطه رابطه ثقیلی دو رابطه اعتباری رابطه اعتباری گفتیم از اشدش خویجیت اعتباری بعدش مساله که مثل مراقبشان مثل جعل علامات خراب میمونه و عادت و بعض از اون مساله تخصیص لازم معناست که این مسئله که مشکوره بین علماء عذب و غیره در, در دوران استانی مشهور کنه این تحصیل یا آخرین درجه هم اختصاص رو در ذهن معناتی اصول در کفایی این آخرین درجه این رابطه اعتباری پس ببینید برای چون ما اون احض اونشون نازر شده که از در تحیونی هم وارد بکنه بوده میدونم میگه نه می احتیاج به میشه نمیشه نیاز به تخصیص نداره نه داره. نه تخصیص خب نیست <تصفيق> یعنی اون تخصیص رو به این معنا که مثلا بگه من این بچه دوام برسمی که حسن باشم تخصیص یه دفعه نه ده بار بیسو بی عثره بیاره مثلا بیا چه جوشش ایجاد حتا مشو می‌خواد اختصاصو از این راه خودش تخصیص می‌کنه ما هم اختصاص رو قبول است اینکه با یک فرقی با مطلبش مطلب بذارید نمیخوام تکرار رو پس ببینید من معتقدم کسانی که مثل صاحب توانی از کردن مبنای صاحب توانی در میان اصولین ما ها در معالم موجود داره احتمال داره حرفای معالم منشع صحبته اونده که در توانی شده یعنی مبنی صاحب قوانی یک صورت به اصطلاح مثلا تغییر داده شده یه حرفای معالم باشه تو مععلم در بحث مشترک گفت ل شده برای مننا به حییر وحن سالاران گفت نه به حید وقتتن نه در حال وح بر چ با حال بعدده اگر اون یادشون باشه. آنی که بعد از زبانان اون ا بح نه نق نهادی شد میش کلام سالزاهه یه مقدار تو این مسئله حجیت زواهر و بحثی از که سال معال معده توی وجودجه نیست، تو بحث های متعله به کتاب به عام در این که آیا عموم برای مشافهین حسد, مشافهین حسد یا عامه برای مشافه هم بگیره یه مطلبی در ما آدم داره که صورت تقریبا میشه با هم هم هم هم خیلی اینطور احساس نکنیم که تو این نسبت دادن هم بعدی که میگه آنه یا واضحه هستی دردارش دنباله داره لذا ما با تردید و احتمال میشه برای اینکه که خیلی بحث نشده اصلا شد به که خود من احتمال داره اصلا من از عباس قوانی مذهب رو نفهم میرم. احتمال میرم این مسلک مناسب باشه با کسانی که دنبال مسلک هستند. از نظر فنی مسود به افهام و غیر مسود به افهام اینا دنبال هستند. چون در مسلک تأخد بین لحظه منان رابطه نیست دقیق رو کنیم. از اون چه که هست تفهیم و تفهم منه تعهد منه و در مساقه تعهد هم توضیحی دادن شاگرد مرحوم استاد دیشتان اشکالاتی کردن که اگر این قضیه کلی باشه توش اصلا موارد در نفتی نیم این تعهد یک سیره عملی لحظی نیست تا بیگه این قضیه کلیه خودش به هم این یک واقع عملی انسانه. من متعهد میشم که اگر مرازم این مایع بود بگم آب شما هم متعقل میشین که اگر من گفتم آب اینو بفهمیم اینو متعقل من فکر می کنم اگر مراز صاحب قوانه این باشه انصافم به این مبنام میخوره انصاف دهتر از اونی که شرینه بوده مخبوش شده او خیلی کلام ثباته یه کلام خیلی ثباتیه همسا گرفتشم جارن سریعا اون که ظاهر عباراتیش این که طبوته چرا من انز کردم ما قید از مسئله حجیت ظهورات ما در خصوص اخبار که اشاره میکنه همونطور که استاد کفتم استاد توضیح کافی هستند من انز کردم این کلام استاد رو مسئله اخبار بین اصحاب ما مسئله دین بوده اون هم دینی که تا روز قیامت رو احتیاج داره. حضرت و عبوبتی یا عبا محمد اکتوب و گفت علمت به ناس به نهو سیعتی علم ناس زمان و هرج لا یعنصون فیه الا به یعنی تأکیر همه در این بوده که این احادیث به جوری ترمین بشه برای نحسی های هایی هایی تروده نیابه به خطیه با این تأکیر اگر فرمینه باشه و مخصی شده باشه و بگنه اختلاف رو زاده بحث بحث کتاب اضافه شد نیست کتاب همینی از که نیست بحث کتاب و دینی برای شیعه خود امام می کنن لای که سیرکی که همین ما امام زن زمان ما نقاب می کنن زمان هره لا یعنسون فیه الا بل کتبه یعنی دیگه مردم شیعه مستقیم به امام معصول رابطه ندارن درستاتی ندارن تنها راه جون همین برایاته لذا شما احتمال احتمالداری یک این عه مثلا نگفته، این خب با این احتمالشون بهزیین میسا با این گرده دقدر برده. با این تصورشون که اینها با نوش، اینها فکر جمع که مثل کتاب علام شاور هم بنویسن. بالاتر از او بود چراون فکر میکردن عنده میفراز یک زمانی خواهد و چشی که رابطه مستری با امامت نداره، تنها حالاش هم همینه باید همین ک. تش باید در اون زمان علاجی بشه، این که شما همان کذیب میکنه مانون اون زمانه خای نخایی طبیعتم چیه اصال کنه هم لساقتشون از ایک طرف هم اجارتشون از ایک طرف هم تقاحتشون از ایک طرف تبقیه این اختزام میتنه که تمام این موارد به خط بکنه این کلام که دلی بسیده اونی که قاون اما من فکر میکنم اگر کسی منکر رابطه لحظه مهمه بشه من فکر میکنم که این موارد سید به نظرم این هم منکر رابطه هم اگر کسی مسئله که را رو قبول کرد انصافا لازم میشه که کمان برای خصوص من خواسته اقواما حجت باشه. چرا؟ چون اون رابطه بین لفظ و معنیانه میگیده وقتی رابطه ندید اون مقدار تکیمون من دارم صحبت ما شما بفنیم شما بفنیم من نصفت بگیم بیگه این مقدار لفظ این مقداره <تصفيق> اما اگر رابطه را قبول کردیم که حاضر باشه نواشه فهمون کنه بقید قبول ده. اگر ما رابطه را قبول کردیم چه شما محصود رابطه هستیه بگه بکنیم تأخد نوعی تأخد نوعی ناید رابطه که نداریشن نوعی اما مرادشون هم اما تأخد به چه معنا دقت بکنید. لذا آیا خویم که من شنم تا میگم این کلام رو به کار ببرم؟ اگر گفتم لحظه آب چیزیم به من آتومات، این سه سکنه سل... از راه آب دیواره. این خسروه این دلار نیست. این هستیم که دلالت دلار نیست. نکته اخلاق ما با یک هنگویی این دلالت نیست. این خسرو نیست. از ماش قابل نظر که اثبات شدی، روی این نکته. به نظر من، حالا اگر من یه اخلاق با خودشون هست، به نظر من. مسلک مثل محقق عمید به که شما داریم روی زبانه روی مسلک کسانی می که رابطه بین لفظ و معنا نبینه فقط تعهد طرفینیه و انصافه اگر این مطلب بحث کرد که شورا دو با آیتویی هم هست ما هم هست نیست چون به مبنای محقق عمید اعتراض کرد نه روی مبنای این که هم همین لازم نمیاد اصلا روی مبنای کسانی که بااله تعهدن چرا چون رابطه‌ای نمیبینه اگر رابطه بود من با آن صحبت را رابطه هست است. کسی دیگر شد اون رابطه را ثابت کرد. تا میگوید اون کسی که این این دکمه را درست کرد. رابطه این بعد آن شخص بین هواپیش قرار اون هم بزنم رابطه هست. من هم بزنم هم. رابطه هست. که لگم دکمه را بزن رابطه. تام رابطه رابطه هست. میگی من احساس من اینه. از هرکه به میام اصلا متعرضی نکته نشده. مردم اظهار که واقعیت هم اون چه ده به نظر من اگر بخیل یک تعلیل لغوی بدیم، ارضی بدیم اگر مسئله تعقض اینجور که من معناد میکنم که مرجع مسئله تعقض نفی رابطه بین لفظ و معنا باشه. بله. ولی خب خود اینه که من میگم عكسش رو رابطه ولی ایشون میگه علاوه بله ایشون بله میکنه. ایشون میگه دلالت تکولی اصلا دلالت نیست. ما میگیم همون هم توش اراده داره اون در آزباهی داره و بعدش هم عرض کرده چیشون که داره خب در فردن دوی فردن لازمه یا مکتبی هست دقیقی لازم یعنی ده بار او تمام نقطه تفشیم و تفهم میدینه ما هم قائله به تفشیم و تفهمیم نه اینکه ما نیستیم نسیم لیکن میگیم تفشیم و تفهم منجر به ایجواز رابطه میشه. آیا مجرد تفکیه متفهمه بدون اینکه بین لحظه معنا رابطه ایجاد بشه؟ این همون نقطه فنیس وقتان تمام شد یک لحظه من فقط به ذهن من این میاد داره تحقیه کلام مرد اصلا من میخوام بگم نهی که مرد قومی رفته دیگران و حتی اون مرده استاد چون این آقایانی که احبود میگن تمام نقطه نظر که اون تفکیه متفهمه اون آنی که دلالت و رابطه ایجاد میکنه اون میگه فهم نمی کنه وقتی این رابطه ایجاد شد دین این دو نفر که تفتیه متفهم داشت این رابطه هم هست من هم که شخص سالسی از این رابطه رو میفهمم شخصی که بعد هزار سالون این رابطه رو میفهمم. فهم رابطه رابطه هستی؟ برسنی تو چی کنی؟ پس بنابراین به ذهن من این طور رو میکنه که این یکی از توا اگر بایله تحفظ شدیم و نفسی رابطه بین لخز و معنا شدیم نتیجه شوازی که محسود به نقام حجت غیر حجت دید. چون بنابراین فقط زاویه کلام در خطیه متفهمه چیزی دیگری نیست. هیچ نهد رابطه بین لخز و معنا وجود نداره و سالالله و سالالله